بطی دارم که گرد گلز سنبل سایبان دارد بهار آرزش خطی به خون ارغوان دارد قبار خط پوشانید خرشید رو خش یارب بقای جاودانش ده که حسن جاودان دارد چو عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مخصود ندانستم که این دریا چه موج خون فشان دارد از چشمت جان نشاید برد که از هر سو که می‌بینم کمین از گوشه‌ای کرده سوتیرن در کمان دارد چو دام تر افشاند ز گرد خاطر عشاق بر قماز سبا گوید که راز مان نهان دارد بیف شنجور ای برخاک و حال اهل دل بشنو که از جمشید و کی فراوان داستان دارد چو در رویت بخندد گل مشو در دامش ای بلبل که بر گل اعتمادی نیست گر خسن جهان دارد خدا را داد من بستان از او ای شهنه مجلس که می با دیگری خوردست و با من سرگران دارد به فترا کر همی بندی خدا را زود سعیدم کن که آفت هاست در تأخیر و طالب را زیان دارد ز سر و قد دل مکن محروم چشمم را بدین سرچشمش بنشان که خوش آبی روان دارد ز خوف هجرمی من کن اگر میدان داری که از چشم بدندیشان خدایت در امان دارد چه عذر بخت خودگویم که آن ایار شهراشوب به تلخی کشت حافظ را و شکر در دهان دارد